از صادق سلام علیه این داستان هست که حضرت می دو نفر وارد مسجد شدن یکی از اونها آبد محل بود همیشه صف اول جماعت مسجد بود او وارد شد یه شخص فاسقی هم وارد شد گناهکار کسی که برخاره زمین خورده یه میل و احساسات و حیزانات درونیش بوده گنه کاری حضرت فرمود بعد از ساعتی هر دوشون از مسجد خارج شدن در حالی که وقتی برود او آبد بود به این پاسق جاهشون همست شد آبد خارج شد از مسجد در حالی که پاسقه و اون فاسق در حالی خارج شد که عابد و مؤمن بود از حضرت سآل کردن چه حالتی میگه پیش اومد چه واقعی پیش اومد اون عابد که عبادت کرد. اون فاسقم مدخوب بلخری نشسته بود به حال خودش مشغول بود حضرت فرمایش کردن اون عابد به خیال اینکه اهل عبادته و اهل مثلا پرستش خداست با این حالش سیر میکرد و خوشحال بود خوشحال بود از اینکه مثلا اهل عبادت هست خوشحال بود از اینکه که چه مثلا رشدی کرده چقدر پیشرفت کرده به جهت همیشه در مسجد حاضر بودن صفحه اول جماعت بودن همیشه مشغول عبادت بودن و این حالت اوج براش پیش اومد که چقدر حال خوبی داری تو در اثر توپیق برای عبادت مثلا اون شخص پاسخ هم وقتی وارد شد با دل دلی شکستی اومد خونه خدا و ندامت پشیمانی که ای خدا من به خونه تو اومدم در حالی که اهل گناه هم با توبه پذیرفته شده از مسجد خارج شد ولی اون با عجب و خودباختگی که من اینم